روی خط تلفن آقای رسول تواتوایی هستند تا گفتار ادبی رو خدمت شما برسونند. آقای تواتوایی ضمن سلام و صبح بخیر در خدمت شما هستیم. سلام، صبحتون بخیر. بفرمایید. امروز 7م شهریور 16اهمین سالگرد خاموشی بزرگ شاعر معاصر اخوان سالس بود. که در سال 1369 در تهران درگذشت. گذاشت شادروان مهدی اخوان سالس سال 1307 در توس مشهد به دنیا آمد تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همین شهر گذاران و در سال 1326 در هننستان مشهد رشته آهنگری را به پایان بود اما انجا در همین رشته آغاز به کار کرد، سپس به تهران آمد، آموزگار شد و در این شهر و پیرامون آن به تدریز پرداخت. شادربان اخوان سالس مدتی به کار در رادیو پرداخت و بعد به خوزستان منتقل شد. در سال 1353 به تهران بازگشت و این بار در رادیو تلویزیون ملی ایران به کار پرداخت و برنامه های دریچه ای به باغ بسیار پردرخ را تحییه نمود در سال 1356 در دانشگاه های تهران و تربیت معلم به تدریس شعر معاصر پرداخت از این شاعر بزرگ مجموع شعر های ارغنون در سال 30 آخر شاهنامه 38 از این عوستا چلو چهار آشقانه ها و کبوت چلو هشت بهترین امید چلو درخت پیر و جنگرد سال 55، در حیات کوچک پائیز در زندان سال 55، و دوزخ اما سرد 57 و هفت زندگی میگوید اما بازید باز سیست در سال 57 و آخرین اثر آن به نام تو را ای کهن بمو بر دوست دارم در سال 68 منتشر شده است این شاعر حماسی ایران در جای گفته است من به گذشته و تاریخ ایران نظر دارم من عقده عدالت دارم هر کس قافیه را میشناسد عقده عدالت دارد دو کفه ترازوست که خواستار عدل است گهگاه فریادی و خشمی نیز داشتم در پایان سخن دو شعر از این شادروان تقنیم می شود لحظه دیدار لحظه دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام مست باز می لرزد دلم دستم بازگویی در جهان دیگری هستم های نخراشی به قفلت گونه را تیق های نپریشی صفای زلفکم را دست آب رویم را نریزی دل ای نخوددمد لحظه دیدار نزدیک است دومین شعری که از این شادروان نغم می شود غزلی است که در سال 1325 شمسی سروده و به زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و محقق ستر تقدیم کرده است با این غزل یاد هر دو را گرامی می داریم خدایشان رحمت کناد تو را با غیر می صدایم در نمی آید تو را با غیر می صدایم در نمی آید دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید نشستم باده خوردم خون گرفتم کنج افتادم نشستم باده خوردم خون گرفتم کنج افتادم تحمل می رود اما شبقم سر نمی آید توانم وصف مرگ جور صد سد دشوار ترزان لید چه گوگم جور هجرت چون به گفتن در نمی آید چه سود از شرح این دیوانگی ها بیقراری ها چه سود از شرح این دیوانگی ها بیقراری ها تو مه بی مهری حرف منت باور نمی آید دست و پای دل برگیر این زنجیر جوری زلف دست و پای دل برگیر این زنجیر جور ای زلف ای که این دیوانگر عاقل شود دیگر نمی آید دلم در دوریت خون شد دلم در دوریت خون شد بیا در عشق چشمم بین خدا را از چه بند خدا را از چه بر من رحمت ای کافر نمی آید شاد و پیروز و تندرست باشی خدا نگهدار با تشکر از آقای رسول تبابایی. صحبت ادبیات شد و شعر. ما هم در امتداد سخنان زیبا آقای رسول تبابایی می پردازم به برنامه که شب گذشته در شهر آوهوس تحت عنوان ماه بیقرار در قالب نمایشگاه نمایش رقص سخنرانی و نمایش فیلم درک تصویری از شاعر معاصر ما فروغ فررخزاد با عنوان شاعر و انسان ارائه می کند این برنامه در سالن گراند واقع در جنب موزیخوست ساعت بیست شب گذشته اجراع شد میور این نمایشگاه مهمترین اثر شروع ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد است که پس از مرگ او در مجموعه به همین نام انتشار یافت ما بیقرار مجموعه است از موزیک، رقص و خواندن شعر به زبان دانمارکی البته از فروغ فرقزاد به ترجمه دانمارکی این گروه در کنار هم مجموعی پرویا و مستقم را تشکیل میدن که با سابقه تجربیات متفاوتشان با دنیا شاعران فرقزاد رابطه برقرار میکنن این مجموعه با بیانی مستند بیقراری ابدی و قدرت و بیان و بخصوص نیاز به رهایی از زنجیرهای تعقل که از مشخص مرکزی و اصلی فراقسده است به نمایش میگگذاررد. شاعر فروغ فراقزد از پرنفوظ و محبوبترین شاعران ماثر ایران است. روز یک شنبه آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد اما، شب گذشته بعد از پایان این برنامه ما گفتگوی کوتاهی را با خانم شادی بازقی که شعر فروخ فرخزاد را به دانمارکی ترجمه کرد و شب گذشته آن را برای هزار خوانده است گفتگوی کوتاهی انجام دادیم شادی بازقی شاعر و مترجم شعر هست که ساکن کپناک است میمان ما در شهر آهوز بودند تا چند از این دیگر گفتگوی کوتاه ما با خانم شادی بازقی را برای شما پخش میکنیم به این گفتگو توجه کنید هفته آینده روزی یک شنبه بیشتر در مورد این تاعتر نمایشگاه و فیلمی که خانه سیاه است از فروغ فرقصاد هم با زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی دیشبت نشان داده شده است یاداوری می کنم که این فیلم روز جمعه ده هم در کتابخانه مرکزی آهوس نمایش داده خواهد شد تا چند لحظه دیگر این گفتگو را به سم حضور شما خواهم رسون شادی بازری هستیم که مهمان شهر ما محبوس هستن از کوپنک تشریف آوردن تا مجموعی ما بیردرار موزیک، شعر رقص، فیلم فلوه فروساد رو به دارمارکی نشون بدم خوش امادیم به شهر آبوس باید از این باید از این که سرعتون شروع کنیم قصی نباشی بهتون بگم برنامه خیلی جالبی بود بفتر نهست خیلی رمونم در جبیه برنامه امشم میخواستم سؤال بکنم اولا شعر به دانمارکی ترجمه کردید وقتا دید خیلی جالب بود میخواستم ببینم که که این کارو شروع کردیم در اوتو برنامه امشم چه مدتی زحمت کشیدیم بانه من این کار رو که بگم اه... اوله این سال اول سال 2006 شروع کردم در رابطه با اینکه من مرزی نویسندگان هستم به دامارکی فرفت آسکول درس میخونم بعد اول ماه قرار شد که به طول یه ماه اگه کسی دوست بره مثلا یه شاعری یا یه نویسندگی رو ترجمه بکنه که من چون گروه سال ها خیلی, خیلی خیلی پیش از از دوست دارم فکرم خب سعی کنم که فروغ رو ترجمه کنم خلاصه یه ما یه چند تشتریش رو ترجمه کردم و وقتی اینو دوباره بعد از یک ماه برگرندوندم به مرسی میمیسندگان مدیر ما خیلی خوششونم هست باقرده خوششونم از کارهای فروغ و اینطور شد که من تمام مجموعه ایمان بیاره این باقرد پست سر رو شروع کارم به ترجمه کردم بنابراین من دوباره از یه چند ماه شروع کردم به ترجمه کردن این شعرها و همینطور از یکی از محلمان درستان کمک بگیرم در رابطه با اشکالاتگی داشتم در مورد جنبسازی به دانمارکی و همینطور از یک پروفسور از دانشگاه کپنهاک که پارسی درس میده میتونستم ازش مراجع کنم برای ساله فارسی این برنامه ای که امشب اجرا شد قبلا در کوپنات برگزار شد استقبال در کوپنات به چه شکلی بود؟ بالا این برنامه در, در اقلی بود تا تا پنشمبه همین پنشمبه این دو روز پیش اجرا شد و به نظرم استقبال خوبی بود یعنی شما حتی اگه روزمامه محله خود یولنس پاستن و امروز نگاه کنیم یا امیلیسه بود امروز درست هم صفحه که امیلیسه خیلی از بود از زیر موینه هم برسه بود از این برنامه ما و این آقا جانالیست خیلی خوشش بود از این برنامه و مخصوصا از فیلم فروش خوشش اومده بود چودو شد که این مجموعه موسیقی، رقص، فیلم خانه سیاه است و شعر درمانکی، گروه فرقصاد، آغاز فست سر این مجموعه رو با هم گنجن بیدیم این به چجوری جور در میاند؟ وانا اینطوری شد که من بعد از اینکه این, این چیزامو نوشته بودم، چیزامو نوشته بودن یا ترجمهای اولیمو نوشته بودم، اینجوری شد که این شیخ خانومی از همین ماه به قرار مراجعه کرد و من گفتم من چون همچکاری کردی بده من بخورم برای اینکه من فعلا می‌خوام بکنم ما هم به حالت توات چیزی درست کنیم بعد دیگه خلاصه ما همجوری که الله می‌داشتیم رو هم دیگه معلوم باشه، رو هم دیگه خلاص برای که باز بهتر مثلا فیلمام نشون بدیم، باز بهتره که مثلا اون خانم هم بیاید مثلا رقص اجرا کنه همینکوری کم کم به وجود اومد شما شهرهای دیگه هم برنامه دارید؟ ما سشنبه اولنسه برنامه داریم یازام سبتم هلسینگورد برنامه داریم و از بیشت به 26 نه تا و شیش سبتم تا سی برنامه داریم کشورهایی دیگه برنامه نداریم کشور نه سوید در آینده چه کاره دیگری در واسه تعه دارین غیر از این برنامه؟ حالا مون دیگه اینقدر این برنامه باخت رو گذاشتم هر روز اونجا هستم چه شما شاعران هستین شما شعرهای دیگه هم از خودتون داریم بله شما چند وقته کار شعر گفتن شروع کردیم؟ من سال‌هاست که می‌نویسم یعنی مثلا کارهای ژورنالیستی کردم مقاله نوشتم اینطوری ها داستگاه های کتاها نوشتم ولی شعر نوشتن رو میشروه دقیقا یعنی تقیباً از چهار سال پیش شروع کردم شعر نوشتن و سال پیشم هم مرسل سرگان شعرامون فرستانم که قبول شدم خیلی این هشکال میکنم مخانمون شادی از اینکه هاوس اشیابا بودیم موجوده در حالتون محفظ باشیم مرسی خیلی ممنونت هست